بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد والد طاهرین و عرض سلام احترام خدمت شما سروران گرامی امیدوارم که لحظات خوبی را در کنار خانواده محترمتون سپری کنید و در ایام پا یعنی ماه مبارک شعبان همگی حض و بهره وافری از برکات این ماه ببرید مطالب تفسیری را اگر خاطر مبارکتون باشه رسیدیم پیرامون مطلب تناسخ و معاد که به صورت گذرا اشارهی به معنای تناسخ و انواع اونها کردیم و در ادامه مفصلا اقسام تناسخ تبیین شد اشکالاتی که بر اونها بود را قرار شد تک تک بررسی کنیم خدمت شما عرض شود که در بین مواردی که بود تناسخ نامحدود که گفتیم از نظر فلسفی باطل و در تضاد با معاد هست و تناسخ محدود به صورت نزولی را که گفتیم با همه جوانب معاد در واقع مخالفت ندارد چون که خدمت شما عرض شود معاد را مختص گروه محدود میدونه و اون گروه هایی که کامل نیستن نیز نیست پس از مدتی به در واقع قیامت و عالم انوار باز خوان گشت تناسخ محدود به صورت سعودی هم در واقع یک نظریه فلسفی غیر صحیح بود که خدمت شما عرض شود که اشکال اساسی اون این بود که تکامل را به صورت منفصل و جدای از هم تلقی می کرد این هم در واقع مخالف سریح و معاد نیست آن چیزی که مخالفت سریح با معاد دارد همون تناسخ نامحدود و مطلق است که ما اگر یادتون باشه توی جلسه پیشین یکی از اشکالات عمده رو گفتیم و قرار شد اشکال دوم رو هم بگیم گفتیم که آقا اگر ما بگیم که در حقیقت نفوس به صورت همگانی و همیشگی در واقع راه تناسخ را طی کنن دیگه در واقع جایی برای معاد نخواهد بود و نکته نیز مطرح شد و گفتیم که معاد منحصر به پاداش و کیفرها نیست افسون بر این که این دیدگاه در واقع قدرت لایزال حق تعالی را به گونه محدود به آفرینش انسانهایی کرده که پیوسته در چرخه تحول و دگرگونی قرار گرفتند. که متاسفانه اینو شما مشاهده می کنید در حقیقت آگاه به توحید و در واقع شعون حق تعالی نیستند. اشکال دومی که مطرح شد که اینجا به نظر من مطلب مطلب فلسفی دقیقی هست که ما یه شقش رو گفتیم اینه که اگر ما بگیم نفسی که از بدنی به بدن دیگه منتقل میشه در واقع دو حالت بیش, بیش که ندارد یا اینکه موجودی در واقع منتبه و نهفته در ماده هست یا موجودی مجرد و پیراسته از جسم و جسمانیات هست اگر یادتون باشه مطلب فلسفیش رو بیان کردیم بین این شکلی گفتیم که نفس منتبه در واقع تو بدن نخست داره این موضوعه یعنی این نفسی موضوعیتی داره و خدمت شما عرض شود که یعنی شما با اون موضوعیت اینه که شما میش میتونید دیگه این شخصیت چیست حالا وقتی که این نفس در واقع منتقل میشود به شخص دیگر در واقع به بدن دیگه منتقل میشه در واقع تمام واقعیت ها و عرضیات خودش رو هم به چی؟ به اون شخص منتقل میکنه یعنی هر چه داشت از عرضیات و واقعیات خودش را به شخص دوم منتقل کرد پس دیگه چیزی براش نمیمونه چرا چون که مورد دیگه درسته؟ طبق نگاه قایلان به تناسخ در واقع خدمت شما نامحدود ما داریم میگیم خب اینجا تو حالت انتقال سوم چه می شود؟ تو انتقال سوم ببینه دیه شخص اول هرچی داشت از عرضیات منتقل کرد که ما هم مثال اون بس اگر یاتون باشه الیاف و در واقع ظرف پر از رنگ رو گفتیم که براتون روشن بشه در حقیقت وقتی انتقال میکنه منتقل می شود نتیجتا این خواهد شد که در حقیقت خدمت شما هرچوت یه این امرم را غیر ممکنی خواهد بود چون چیز دیگه نمونده که بخوام منتقل کنم. جمع میان دو نقیص هست دیگه. یعنی شما اون نفس نفس چیز هر چه چی داشته منتقل کرده دیگه از واق... واقعیت ها و قایق خودش منتقل کرده و شده چی؟ هیچ. حالا دیگه میخواد دیگه هیچی نداره که برسونه در واقع منتقل کنه به شخص سوم که میخواهد باشد. یعنی نبودن و بودن دیگه تناقض بین این, این میشه دیگه پس در حقیقت با این نکته دیگه نمیتونه عرض جسم اول به در واقع جسم چی؟ جسم سوم منتقل بشه دیگه هیچ موضوعیتی نداره دیگه چیزی نمیمونه که این نکته را ما اونجا گفتیم حالا میمونه فرض دوم فرض دوم اینه که موجودی هست مجرد و پیراسته از جسم و جسمانیات که آیت الله سبحانه تو صفحه 197 می که نفس مستنسخ در واقع حزی از تجرد دارد و پیوست متعلق به ماده میگردد توی تو این فرضه مستلزم این فرضم اینه که موجودی که شایستگی تکامل و تعالی را دارد هیچگاه به مطلوب نرسد و پیوسته در حد محدودی در جا زند زیرا تعلق, تعلق پیوسته به در واقع ماده مایه محدودیت نفس هست در واقع نکته رو گفت گفت که تعلق پیوسته به ماده مایه محدودیت نفسه ببینید من بخوام ساده تر براتون بگم شما در نظر میگیرید حالت اول که معلوم شد دیگه این نفس در واقع دونستیم از بدنی به بدن دیگه منتقل میشد دیگه هرچی هم از عرضیات داشت و منتقل میکرد که گفتیم به شخص سه دیگه نمیتونه برسه حالا اینا برای اینکه که مشکل رو حل کنن میتونن یه دای دیگه کنن آقا میگه ما اینجوری نمیگیم که دوچار خطا بشیم میگیم آقا یه نفس بیشتر نیست خب یک نفس اینم یه موجود مجرده خدمت شما مجرد هست خدمت شما هر شود که مدلش هم اینجوره این نفس در واقع منتقل میشه خدمت شما به جسم اول وقتی مرد دوباره منتقل میشه به جسم دوم وقتی شخص دوم مرد منتقل میشه به در واقع شخص سوم و همینجوری سلسله وار ادامه دار میشه خب ببینید یه مشکلی که اینجا رخ دهد اون مشکل چیه ایشون میگه که این خودش مایی محدودیت نفسه زیرا نفس متعلق از نظر ذات تجرد و از نظر فعل پیوسته قائم به ماده هست. و این خود یک نوع بازداری نفس از ارتقاب درجات بالاتره. ببینید اگر یادتون باشه ما بارها گفتیم در حیات دنیاوی تعلق نفس به ماده از نوع تعلق چیه؟ تدبیریه. اصلا مگه می شود بگیم که ما به نفس علق بگیرد به بدن و هیچ گونه در واقع تدبیر برای اون نکنه منظورم تو حیات مادی ها هست ببینید ما اگر یا تو ماشه تو حرکت جوهری ملا صدرا گفتیم دیگه ملا صدرها بیانی که داشت که ما گفتیم بیانی هست بسیار دقیق هم اینجا برگرفته از در واقع اصول اقلانی و خدمت شما عرض شود خدمت شما عرض روایات ما بود دیگه واسه تکامل را مطرح میکرد تکاملی که جناب ملاصد را مطرح میکرد اینه که انسان در همین محدوده ماده که باشد شما تو همین عالم طبیعی باشیم و خدمت شما عرض که بدن دنیاوی مون در واقع تو سیر و حرکت و تکامل بدن اخروی را گفته تو دامن خودش میپرورونه و با توجه به این مورد که ایشون میگه که ما توی جلسات پیشین بهش اشاره کردیم در حقیقت تکامل با همین چی حاصل میشود با همین بدن حاصل میشه. تکاملی که ما داریم با همین بدن حاصل میشود یک چیزی جدا از این بدن نیست اگر ما مجردیم که دیگه تکلیف دیگه چی هست نمیتونیم خودمون انسان فرض کنیم این متفاوت میشه پس چیزی که جناب بارها بهش اشاره کرده اینه که ما در, حق... در حقیقت تکال... تکامل تکاملمون با همین بدن و حاصل بشه حالا ما ده... کاری با این تفاوت نگاه مولا صدرابار متکلمان نداریم اما انسان متکامل در واقع باید یه مدتی با این بدن به سر ببره دیگه باید یه جورا این نیازهای این بدن رو چکار کنه مرتفع کنه البته اون نیازهای که چیه مقبول حق هست حرکت جوهرینه که من در واقع روحم در واقع با همین بدن باشد منتها این بدنه رو من چکار کنم مدیریتش کنم وقتی این کارو کردم در واقع نفس و روح نفس و جسم من خدمت شما هر شبات که چی میشه اینها با هم دیگه یه نوع تناسبی با هم دیگه دارن این حاصل این چی هست؟ حاصل تکامل هست دیگه ما اینو چند بار اونجا هم گفتیم حالا اگر شما بگید که آقا تعلق در واقع این تعلق به این شکله که تعلق نفس به بدن اینه که آقا این چی هست خدمت شما عرض که این فقط منتقل میشه هیچ تکاملی روخ نمیده از بدن علف از این نفس از بدن علف به بدن بعد. بدن ب، بدن جیم همینجور ادامه دار باشه اگر این اتفاق رخ بده طبق صحبتی که ایشون داره خدمت شما عرض شود که این در واقع یه نوع بازداری نفس از ارتقا به درجات بالاترها، ها در حالی که انایت حق تا ایجاب میکنه که هر موجودی به کمال مطلوب خودش برسه این کمال نیست چگونه حاصل می شود؟ اینه که ما در واقع تو همین حیات دنیاوی که هستیم در واقع تعلق نفسمون به بدنمون بگونه باشد که اون را افسون بر ماده بتونه به تجرد و به عقل برساند هرچند مقام عقله خدمت شما بعد از مثال به مثال و عقل برساند مرحله تجرد برسونه دیگه حالات این دشوار هستا ما نمیخوایم بگیم کار راحتی است این،, این کمال مطلوب ما هست خب حالا اگر ایشون میگه مقصود از کمال ممکن کمال علمی و عملی هست و اگر انسان پیوسته از بدنی به بدنی دیگه منتقل شه هرگز از نظر علم اول عمل،, عمل و انکاس حقایق بر نفس و تخلی از رضایل و آرایش به فضایل به حد کمال نمیرسه این که ما بیایم همینجور نفس را حبس کنیم نفس محبوس شد فقط به افراد دیگه به کلی افراد بدونی که در واقع این تعلاغت صورت پذیرت بدونی که مثلا تعلاغی فقط این میاد این نفس برای فلان شخص هفتاد سال این وقتی تموم شد برای شخص بعدی سی سال برای شخص بعدی نوت سال بعدش بدونی که در واقع چی بشه؟ خدمت شما عرض شود که به این مراتب اقلانی هم چیه؟ مراتب اقل حیولانی و بالملکه و مصطفاد و بالفعلی که در واقع فلاسفه ما میگن به این جا هم چیه؟ بدونی که به این ها نائل بیاد خب طبیعتای این با انایت حق تا حالا چیه هست؟ در تآرز هست خداوند در واقع این نفس را به ما داده است و خدمت شما عرض شود که قرار هست اون تعلق به بدن بگیره و بدن مرکبش میشه و ما میتونیم در واقع با اون سیر خودمون با اون حرکت خودمون رو آغا، آغاز کنیم چیزی که ملاصد را بهش اشاره کرد تو حرکت جوهری همین مطلب است خب یه, یه نکته ای را هم صفحه 197 پایین،, پایین اشاره میکنن که در اینجا یادآوری نکته هم لازمه که ابتعال شق دوم به نهبه که بیان شد صحیح نیست البته ایشون نظر فلاسفه رو چون قبلا دیدید که ایشون چون نمی پذیرفت دیگه دید و, رو. و یه نکته اشاره میکنن میگن که اگر تعلق نفس به بدن با حکمت, حکمت حق تالا منافات داشته باشد باید گفت مواد همگان و یا لاقل گروه از کاملان روحانی است یعنی فقط روح آنها محشور میشه و از حشر بدن آنها خبری نیست در حالی که این بیان با نصوص قرآن سازگار نمی باشد این برمیگرده و اون مطلبی که ما تو جلسه پیش گفتیم دیگه جلسه پیش در واقع دیدگاه اورفا مطرح شد آقا دیدگاه اورفا در مورد معاد روحانی بود دیگه اینها بس ماده روحانی رو که مطرح می‌کردن گفتن که ماده روحانی در واقع همگانی نیست بس لذت‌ها و لذت‌های اقلانی و این موارد رو که گفتن بس ادراکات رو هم مطرح کردن نقش ادراکات و اونها رو گفتن بعد به مراتب لذت‌ها گفتن گفتن او هایی که در جسم در واقع هستن، اینها فقط متمرکز در جسم و جسمانیات هستن، اینها به مرتبه کمال نمیرسن در واقع این بدنشون اگر تعلق نفس به بدن صرف باشد، اینا کمال برایشون حاصل نمیشه آیت الله صبحانه میگه آه. این حرف حرف درستی نیست چون حرفی که شما میزنید میگید معاد برای چیه؟ معاد برای همگان نیست برای ایده خواسته اینم پیشتریشون اشاره کرد که بر اساس آیات قران کریم معاد معاد روحانی همگانیست است که منم اونجا گفتم این تکمله را لحاظ کنید که معاد روحانی رو ما قبول داریم طبق نکته که عرفای ما حرفای درستی گفتن منتها یه چیز رو با اینجا اضافه کنید معاد مطابق آموزه های و روایی همگانی است چیه؟ مراتب داره طبیعتا اون هایی که در واقع تعلقات مادی داشتن و از اون ور اهل عمل به شریعت بودند همون چیزی که ایشون میگه تهذیب منظور من از مادی خدای نکرده گناهان نیست یعنی افرادی که بر حال شخص مثلا رفته صبح برای خانواده کار کرده دیگه این بن خدا تو این مسیر بوده تو این مسیر بوده و آمده در حد عباداتش رو انجام بده حالا این با اون مرتبه ای از شناخته در واقع نظری و علمی نرسیده منطقه تا آنجا که تونسته واجبات رو بهش عمل کرده حالا اینجا بسته به این است که این مرتبه شناخته حالا کم یا زیاد هرچی مرتبه شناخته بیشتر باشد چون عمل کرده بوده به دین خب طبیعتاً متکامل تره هرچی پایین تر باشه وضعیتش متفاوت میشه ایشون میگه که بعد به جایی که ما اینجوری بگیم در واقع در باب معاد میتونیم بگیم که پذیرفتن فرض دوم با عدلهی که وجود معاد و حشر انسان را در جهان دیگر ضروری تلقی میکند کاملا منافات دارد و اگر آن ادله را پذیرفتیم هرگز نمیتوانیم فرض دوم یعنی نفس مستنسخ پیوسته در این جهان به بدن در واقع چی؟ که پیوسته به بدن متعلق میشه را بپذیرفتیم بپذیریم اینه که اینا ما فرض بگیریم که هر بدنی نکتش اینه دیگه اگر ما بگیم که ما ادله برای وجود معاد داریم که هر،, هر کدوم از ما می در واقع آخرتی داریم بدن من متعلق به خودمه چرا متعلق به خودمه چون در واقع چیزی بوده که خدا برای من قرار داده اینه برای دیگری قرار نداده و نکته جالب اینه که این بدن من چون با روح من تلاطم و تلازم و تناسب داشته در واقع درکش از لذت ها و خدمت شما هرچه و درد ها متفاوت با بدن دیگری است چون بدن اون هم در واقع بابت ارتباط و تناسبش با روحش اینه که اونم متناسب با خودش اونا را درک میکنه و میفهمه و این یه نکته ای هست که ما بر اساس آموزه هامون داریم خب الان اینجا مطلب طولانی شد چون مطلب مهم بود من این مقدار وایستادم رو مطلب یه بسی هم مطرح میشه بسید تناسخ نزولی و واپسگرایی که ایشون توی بسید اشکالی که به اون میگیرن اینه که آقا تو نقد این نظریه ما کافیه فقط به این نگاه کنیم به این واقعت نفس زمانی که از بدن جدا میشه به پردازیم مثلا خدمت شما ارز شود که ایشون مثال زده یه شخص چل ساله به یه کمال خاص میرسه دیگه بخشی از قوه هاش در واقع به فعلیت در میاد هیچ, که هیچ کسی نمیتونه انکار کنه که نفس یک انسان چل ساله قابل قیاس با نفس کودک یک سال و دو ساله نیست حالا البته ما در مورد احل بیت نمی کنیم. ما در مورد عموم انسان ها صحبت میکنیم خب میگه هیچ کسی اینه نمیتونه انکار کنه یه حرف کاملا پذیرفتنی است خب بر اساس این فرض تو تناسخ نزولی که رو انسان چهل ساله بعد از مرگ به جنین انسان دیگه تعلق میگیره از دو حالت بیشتر نیست یا یعنی اینکه که ما میگیم نفس انسانی با داشتن اون کمالات و فعیلیت ها به جنین انسان یا جنین حیوان یا بدن حیوان کاملی تعلق میگیره یا اینکه میگیم نفس انسان با حصف فعیلیات و کمالات در واقع به جنین انسان یا حیوانات منتقل میشه خب ببینه قیه یاتون یا باشه توی تناسخ نزولین بحث مطرح بود دیگه افرادی که در واقع به درجه کمال از حکمته در واقع علمی و عملی همون نظری و عملی نرسیده بودن بار دیگه برمیگردن چی؟ به این دنیا برمیگردن بعد از اون که این جنبه خودشون رو به کمال رسوندن در واقع اون موقع معادشون شکل میگیره در واقع از به عالم انوار میپیوندند که بس محدودیت از نظر افراد از نظر زمان رو ما اونجا اشکال گرفتیم خب حالا سوال اینه این آدمی که ما گفتیم کامل نبود خب منظور ما کامل در حد اون افراد وقتی میگیم کامل نیستن داشتیم مقایسه میکردیم دیگه یه دی که تو درجه کاملان بودن یه عدهی افرادی که در درجه ناقصان بودن همین آدم ناقصی که ما تو تفاوت گفتیم طبیعتاً این این وقتی برمیگرده طبق چیزی که شما میگید باید سیری داشته باشه دیگه این یه برگرده به جنین خب وقتی تعلق میگیره خب این یه سری کمالات داشته دیگه بر حال قوه و قوای خودش رو به فعالیت رسونده یا باید اینا رو با در واقع به کمالات رو در واقع به اون جنین باید منتقل کند که این امتناع ذاتی داره همون نکته که من باز گفتم ببینید نفس با بدن ینو یعنی در واقع تناسب و خدمت شما همه هماهنگی دارد نفس با بدن در واقع این ارتباطه است. خدمت شما عرض شود که شما قصه را کودک یک جور درک می کند جوان،, جوان هم یک جور درک میکنه در واقع میان سالم یه جور درک میکنه درسته قوای ما. اینا رو تو روانشناسی اثبات شده دیگه ما سه تا شخصیت داریم دیگه شخصیت کودک شخصیت خدمت شما عرض شود میگن پدر یا والد و شخصیت معلم ما این سه شخصیت را دائما داریم. اینها طبیعتا ادمها وقتی به بلوغ میرسن این سه شخصیتشون هم جو رشد میکنن اینا تو روانشناسی مطرح میشه دیگه ببینید این متناسب با اونن. بر نمیشه شما اینا نمیتونید برگردونید به جنین این اصلا امتناع ذاتی داره دیگه این چون گام به گام ببینید مراحل تکامل و به فعلیت رسیدن گام به گام صورت گرفته اصلا یک امتناع ذاتی داره یا اینکه ما بگیم آقا هرچی از فعلیات و کمالات داشته چیکار اینا حذف میشه بعد در موقع این نفس منتقل میشه به جنین انسان یا حیوان که این در واقع اولا یک ناممکن هست این چیزی که اینجا مطرح شده اولا یک عمر ناممکنه یکی دیگه هم با انایت و لطف حق تالا حکمت حق تالا چیه؟ ناسازگاره چرا چون که مقتضای حکمت حق تالا اینه که هر موجودی رو به کمال ممکن برسونه هر موجود را به کمال ممکن برسونه حالا ما می‌خویم کمالات رو بگیم خداوند بیا کمالات را از این بگیر حالا بیا از تو از صفر شروع کن مثل اینکه ما دیدید همیشه میگیم کاش من برام گشتم کودکی این کاش یک چیز محاله خداوند به ما ها رو داده ما با همینا رشد کردیم دیگه آیا میتونیم از حالا تغییر را ایجاد کنیم درسته از اونورم نکته که به شما گفتیم امکان پذیرم نیست به خاطر اینکه حرکت از کمال به نقص در واقع این طبق نقطه‌ای که ایشون گفته خصیصه ذاتی یک شی نیست حرکت از کمال به نقص یعنی موجودی که رفته به کمال رسیده دوباره ما برگردونیمش ناقصش کنیم اصلا این امر ناممکن هست پس با این نقطه‌ای که گفتیم ناممکن بودن بابت اینکه در واقع جز خصیصه ذاتی نیست یا اینکه بس عامل خارجی را بگیم که خدمت شما عرض شود که اینم با حکمت و انایت اقتالا ناسازگار هست که خداوند اقتضا می کند حکمتش که هر موجودی را به کمال ممکن خودش برساند